بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والي وصحبه اجمعين اي شيء از کلام موفتاز صبح شروع کردیم مقاله حائیه معلومه کی چرا یعنی این اسم این ابیات شعر گذاشته شده حائیه مثلا میگن شما تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لألك ح حق أخر شيء ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنزو وتربح آخر أبيات وشحر فيه حق حق أي باعتبار حرف حق أخر بيت الشعر ودن بكتاب الله دينة قرآن والسنة قرار بدك أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وبرز بحشه، أصل Quran الصناد، تنجو وتربح إبراهيم نجاته، وراه راه السودة، في سد بندية، وفي روزيه، دار، تمسك راه أن هذا سرط مستقيما، فتبعوه ولا تتبع السبل، فتفرق بكم عن سبيله، يك سرط يك راه مستقيم ربقي. بدج الرهارة رهابكنيف، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحه الله أثمر، بذلك دان الأتقياء، بذلك دان الأتقياء، شيء بين خياب متقيم ددار عن دوران سلف صالحون درباري كلام خدا. مخلوق مخلوق نیست خدا صحبت کرده با مخلوقات نکرده و قل غیر مخلوق این کلام ربی نه کلام پروردگاریمون چیه مخلوق نیست خدا خلقش نکرده ایجادش نکرده در خودش صحبت خدابنده اوصاف خداست بسید اوصاف خداست درسته؟ قول داره همونطور که ما قول داریم کلام همونطور که از مجموع کلمات گرفته شده ترتیب از کلمات همونطور که خدا با کلمات با ما صحبت کردن چی کردن؟ صحبت قدامی حق القول من قول گفتار صحبت درسته؟ ولیکن خلاف از اطباع جهر مصفان و جعد دبن درهم قائل بچه بودن بر این که خداون متکلم نیست خداون صفت کلام نداره چرا؟ چون آقای ارسطوی فیلسوف یونانی میگوید لازمه صحبت کردن زبانه و لازمه زبان داشتن جسم جرم حجم ماده هست طور که زبان انسان ماده هست قاله ای فهم قرآن با لغت عرب فهم قرآن با عرف یا با دلیل شرعی یا منطقه یونان از اون کفار ملاحده قرآن را با زبان یک ملحق را بفهمید نشست و برخواست با اهل بدعت اهل کفر و نفاق، فلاسفه هندوز و سنی اونهایی که قائل به تا خدا بودن نصارا گمراش شدن خاطر نشسته با همین ها، وقتی که اومد, اومد پلس و عقیده ی خدا و پسر خدا و روح القدس رو برشون گذاشت و اعتقاد به سطح خدا پیدا کردن فکر نکنید این عقیده عقید نصارا بود خیلی این عقاده هندوستان بود براهاما و فشنا و سیفا سه خدایی بودن که هندوست بودایی ها بهش اعتقاد داشتن این عقیده از هند صادر میشه به یونان یونانی ها اساس دیانتشون اعتقاد به مسیح بود احنا کتاب بودن ولی نشست و با این فلاسفه سبب شد قطعه تاثیر این فکر واقعه میشن همین بسنی ها بودترستان مثل پولس میاد یا مشاور یهودی بیاد این دینشونو تحریف بکنه که متأثر بشه با فکر اونا و ها و میاد نزل نزل ها این فکر میاره در نزد نصاره همین چیز در اسلام روخ داد جعد درهم این شبه را مطرح کرد بود که اگر بگیم خدا صحبت کرده لازمه این صحبت کردنش جست داشتن و خداون از جست بلیه از خداون سبحانه پاکه منزه سبحی اسم ربی کل میگه خداون تسبیحه مسبحه پاک منزهه از منزه؟ از همه چیز از همه چیز حتی از دیدن جلیدن؟ بله حتی از دیدن جلیدن سبحان الله خدا بيدي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير اثبات النبي اثبات خدا غير تسبیح تسبیح از سي تسبیح الظلم الظلم درست خدا, خدا تسبیح منزه, منزه, منزه از اون صفاتی که يهود و نصارات بخدابن زدن و گفتن خدابن خسته شده که خدا من خودش متبرد می که الله لا اله الا هو الحی و القیوم نخسته می شه و لا تأخده سنت ولا نوم نمی خوابه هم نمخسته می شه در چورت می زنه بس سبب اسم ربک الاعلا تسبیح و تنزیه خدا از صفات نفس نه تنزیه خدا اونطور که اونها فهمیدن و خدا را از سمامی صفات من کردن و دفتن آخرش نتیجه خدا دفتن عدمه یعنی اگر بگیم خدا چیزه اگر بگیم خدا چیزه پس خدا میشه ماده جسد جرم خدا نباید چیز باشه خدا چیز نیست خدا چیز نیست سفاد چیز نداره چیز انسان خدا نباید چیز باشه سبحان الله خدا در قرآن میگه قل ایو شيء این اسبرو جهد قل الله به کجا بر میگرده به شی بر میگرده نگرده شی ولی شی مثل ما ليس, كمثلي. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء الشيء بل ليس مثلك اشياء هم تلك خدار نفس داره بل ليس نفسي مثل ما درسل وصنعتك لنفسي وصنعتك لنفس إثبت النفس خدارات خداراتك كل نفس ذائقة الموت كل نفس عموم خصوص يا الناس کل نفس همه نفس ضعیقتون همی میره خدا می میره نی میره. چرا؟ چون نفس خدا غیر از نفس ما هاست. چون کلام خدا غیر از کلام ما هاست. خدا این بچه مشترک قدر که اونها گمراه شدن این قدر مشترک بهش میگن خدا نفس بره ما هم نفس داریم ولی که در این کل شامل نمیشه چون خداوند نفسش نفس مخلوق نیست این عهده چی میگن عهده ذهنی حسی. همه ما میدونی خدا مخلوق نیست به خاطر همین هیچ کس به خودش اجازه نمیده که بگه کل نفس دائقه تا الموت حتی اون جهمی نمیتونی جرعب بخود بخودش بده بگه خدا موجود میشه این ها چه کار میتونی؟ میگه نهتا خدا که نفس نیست اگر خدا نفسی نیست بس خدا گفت بس کل نفسی غیر از این آیر فرمودی خدا کتب ربکم على نفسه الرحمه على نفسه بر نفس خدا فراتین نمیشه رحمه، بلکه نفس خدا غیر نفس ما هست. کلام خدا غیر از کلام ما هست. وقل غير مخلوق كلام ملکتنا کی با ما مخالفند؟ اهل کلام فلاسفه، اخبار جهم سفان و جهل نفان از وصله بدعتاء، ابو الحسن اشعاری، ابو الحسن متریده، قول دومش و نه قول ابو الحسن شده در کتاب في در آخر حیاتش. شما نجواب کنید جناه التحريف. جنایت در کلام خدا مغلوب علیهم یهود کلام خدا را تحریف می‌کردند تحرفون الکلم کسانی اومدن در اسلام به اسم اسلام با شبهه ارسطو دستکاری می‌کردن توی قرآن با اون شبهه ارسطو زمخشری برای نصرت دادن مذهب غاصل ابن عطا در کتاب کشافش وقتی که میرد به فرمجی خود و کلم الله الله فعی مفعول فعی میاد میگه این کلم الله نیست در از کلم الله بوده کدوم قرآت الله مفعوله و کلم الله یعنی موسی با خدا صحبت کرده برای چی؟ برای این که خدا را به قول خودش تنزیه بکنه از صفات مخلوق و اونم کلام خدا کلام داره ولی که نمثل کلام ما مخلوقات درسته لیسک که مثله شی و هو السمیع البصیر نفی اسوات نفی قاعده توحید و تنزیه روی نفی اسوات میچگه نفی به تنهایی هیچ وقت کمال نیست من به یک از شما بگم دوست نیستی قاتل نیستی زناکار نیستی آيا من بگم نیستی نیستی نیستی من حیدر اش هستم یک پادشاه اش شما دوست نیستی شما قاتل نیستی مت چه نافع تن و محضر چنین به خاطر همین خداوند از باب کمال ناف با اثبات میاره لا اله الا الله نافع لا اله الا الله نافع اثبات لا اله معبود حق الا الله ليس كمثله شيء ناف نفس وهو السمع البصير اصبات فلقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واشهدوا الطاغوت نفي ناف واثبات كمال تواغي الرسوله كمال نزاهه يعني فيش وقت زينت خطود نكون ان مثل شما ميبينه يا مثل شما ميشنوه بذلك دان الاتخياء الله اكبر دان الاتخياء ان دين دين السلف الصالح تونهن هاي كتابع الصحابتهن بودن والذين تبعوهم باحسان والذين اتبعوهم باحسان انهي كراوه راحه اصحابنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اتبع غير سبيل المؤمنين علماء القيام احمد بن حنبال او زراعي مالك ابن انس شافعي و امام تحابي و امام نمیدونم ابن بقطي عكبري امام ابن خزيمه در كتاب توشیدش که ناقم میکنه در بحث كلام خدا امام ابن منزه در كتاب توشیدش امام آجوری در كتاب الشريعش که با اتفاق امی سلف و سلف و اونهایی که تابع سلف بودن ما بعد اون سلفمون از صحابه تابع تابعی و تابع اطباع اعتقادشون بشی بوده کلام خدا مخلوق نیست دان الاطقیه این ها متخینتون هست اونهایی که دینتون مجحبتون فتحتون از اونها میگیرین شافعی و احمد و مالک او حنیفه اون چیزی که ما در عقیده تحاویه میخونیم از اعتقاد او به حنیفه خداوند صحبت کرده با موسا صحبت کرده دان الادخیاق این دین متقینه نه این که طرف بگه من مذهبم حنفی مذهبم شافعی در عقیده چیم؟ در فروع حنفی شافعی در عقیده ماتنیدیم یا اشعریم این دین نیست که ما رح رو راه متکلمین از اتباع جهن و سفقان باشیم اونهایی که اومدن تقبل بر خدا کردن و اظهار نظر کنه برای خدا که خدا افترا بستن بر خدا و من اظلمم من افترا على الله کذیبه اونها دروب بستن به خدا وقتی که اومدن گفتن خدا صحبت نکرده چون خدا داره میگه من با بندگانم صحبت کردم و از قیامون اون علمامون که خدا در بارشون میگه اینما یخش الله من عباده العلماء احل تقبا و ترس از خدا بودن و سفت کلام را برای خدا اثبات کردن اونهایی که متخی بودن و دانه به ذلك دان, دان الاتقیه دین اونها بوده چه احمد ابن حنبل سه سال در زندان شلاخورد چه کنجه دید بخاطر چی؟ بخاطر صبر و مصابرش سباتش بر این که کلام خدا مخلوق نیست متخی بودن بودن اکراه شد ولی نپذیرفت، تحدید برکرد شد این دین افتقیات این ها متقیان رح رو راه این ها باشید بدالک دان الافتقیات و افصح رو افصح کردن روشن سختن آشکارا بخدن برید تحاوی رو بکنید برید امانی رو بکنید برید الشریع رو بکنید اونها چی گذاشتن برایتون؟ شما یک کتاب نام میبرید تألیف جحل و سفان تألیف واصل رو معطا غیر اتون متأخرینشون صاحب کتاب وصول 50 قاضی عبد الجبار همدانی و دیگرانی که هم داره رهربا راه فلسفه بودن، غیر از فلسفه، غیر از کلام یونان از آرستو، چیزی دیگه تو چی تو چن دینمون از کی میگریم؟ از کسانی که رهربا راه فلسفه بودن، اون دو تا باید که ما شرح دادیم. پس کلام خدا، کلام مالکمون مالک یوم دین. فملك يوم الدين كسيك مالك ما هو ما مخلوقات كلام شحقه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلمات تخده صدق وعدل ولا في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح متوقفنا شو صفت نکن وقتی که بهت میگن خلف اینطوری گفته خلف اینطوری گفته شک نکن تردید نکن که شاید حرف جه مستفان درست باشه تردید نکن ندو من متبقد میشم شاید حرف جه که تابع عرصو هست شاید حرفش حق باشه خیر حق، خیر حق، اگر حق بود اون متقیان هیچ وقت باز مبارزه نمی کردن هیچ وقت کولشونو پتا نمی کردن به اجماعشون به اتفاقشون هیچ وقت در مقابلش نمی ایستادن ولا تکو فی القران بالوقت قائله ندم المتبقیف میشم نمیگم نه, نه خدا کلام داره نمیگم خدا کلام نداره شرور ترین اشخاص بدترین اشخاص همین هم که میگن ما متوخف میشیم چون مردم فکر میکنن اینا دین دارن حالا از خدا میترسن کسانی که تحفیز میکنن میگن که ما متوقف میشیم نه ثابت می خیر اینها مثل اینکه قائل به این که کلام خدا مبین نیست بنسان عربی مبین کلام خدا مبین نیست واضح نیست آشکار نیست این داره نفس قرآن میکنه قرآن قابل فهم نیست اینجا هست که دیگه ولا تکو فی القرانی بالوقف هیچ وقت نباش با کسانی که قائل به توقف شدن گفت که ما متوقف میشن هیچ وقت نگو خدا نمیبینه نمیشه بلکه میبینه و میشنوه بلکه سخن میگوید کما قال اتباع لجهم و از جهو همونطور که اتباع جهم و صفان اومدن به قول خودشون میان روی بکنن بین سلف و خلق و اومدن پذیرا شدن گفتار جهم و صفان و اومدن از خودشون نرمین نشون بدن سچ نرمیه یعنی اومدن با قول جهم نرمین نرمین نشون نده در اینجا دیگه کتار نیاز از اتقاده. چرا نشو چرا کوتاهی نيا چون خداوند پیروزی نجاه صلاح راستگاری را به تمسک در قرآن و سنت به فهم سلف امت برسان و من یشاجک رسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبيل المؤمنین نوجهه ما تولى ونصر نصر جان وساءت مسير عاقبت اگر رهرو راه مؤمنین که خدا اینجا مدشه ستایشون تو به معیار قرار میده ایمانشون برای ما، تا این آملون مثل ما امنتون به معیار قرار میده ایمان سا اصحاب اگر این راه نرفید این راه راه رستگاری و فلاخ نیست این راه راه جهنمه و ساعت مسیران بس هیچ وقت پشت به سلفت مده پشت مده به راه اونها تابع این متکلمین مشروع ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح ولا تقل ولا القرآن مخلوقها قران مخلوق هيت كلام خدا كلام مخلوقها كلام نفسي الاشاعره والماترده بيغن ان كلام نفسي خدا داخلش اومده بس خلق هذا ده ايه نتابع الجاه نتابع متكلمين اصحاب ابو الحسن اشعری و ابو الحسن ماتلیدی از اصحاب این دو فرقه هم نواش نلوک کلام خدا کلام نفسی هست بس صفت کلام را از خدا نف بکنی تقوول بر خدا بکنی حق القول من نی را قول را از خدا نف بکنی این اجازه به خودت نجد فإن كلام الله باللفظ يوضحه چون كلام خدا بند با لفظ واضح مشه یک شبهه هست که در اون زمان روح داده بود بعض از لا يمكن ان يكون لديك بخاري مخلوقا لانه مخلوط. يمكن ان شد لديك شد يكون لديك ان کار لديك میگه مي این کار شما يكون لديك ان يكون لديك ان يكون لديك ان يكون لديك ان يكون لديك ان يكون لديك ان يكون که علما رو میگیرفتن زندان میکنن زندان زندان میکردن سر میبریدن چقدر از علما سر میبریدن متذله رهر و راسه علما رو راه را میکشتن شکنجه میدانن به خاطر چی به خاطر همین قضیه خلق قرآن بعد از عمه ثوری میکردن میگن لفظ لبز این لفظ هم به قران از ذاونه نیست نه تلفظ ما مخلوقه اینجا فَإِنَّ كلام این کلام الله باللفی واضح بعد از اون گفتن ولا تكن القران خلق قراته فان كلامه كلام الله باللفظ يضحك كل بيت لفظا من كلام خدا مشخص میشه این کار نکن تا مردم دیگه در شک و شبهه ن گفته لفظا به قران مخلوقه ند این چیزی که من تلفظ میگم هر انجیل درسته که قلبا اعتقاد داری منظور اون چیزی که زبانه تره چاره اون پیدا میکنه زیر بالا میره خلق خداست ناخذ اصل كلام درست منظورت اصل كلام نيست وليكن اين راه راه بدعت صريح باش ما بگو كلامي كه من تلفظ ميکنم كلام و كلام خالقه كلام من نيست كلام من نيست بلکه كلام خالقه قرآن بدون شد كلام خالق بارك الله واس و يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضحه اوضح از اعتقادي به اعتقاد ديگر أولي اعتقاد. اعتقاد بقرآن والسنة بفهم سلطة الممت دومي مسألة بحث اسماء صفات اثبات صفات كلام برأي خدابند ثومي مثلا بحث رؤية خدابند در روز قيامات إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة بد لا تضامونه في رؤيته هیچ مزاحمت نیست راحا همونطور که ما هم را می‌بینید خدا را هم خواهید دید رسول الله صلی الله علیه و سلام از خداوند لذت النظر به نگاهش را به بیدار پروردگار را می‌خواستند لذت النظر الى وجهك الكريم خدا رسول خدا از خدا می‌خواستند این لذت را خدا بهش بده لذت النظر داشتن به خداوند که بزرگترین نعمت زمخشری بفرمایید انصاف نمیدونم نوبت زمخشری شده رسید که زمخشری صاحب کشاف خیلی زیرکه همچین ابرازی برای اینکه که صفت قوصد زمخشری یا بحث دیدن قدوان را کار بکنه حدیث این نکم سترون رد میکن متواتر. متواطره میدونی چی میگه مثلا بحث بهش میاد جنات تجری من تحت هل بهشت زیرش نمیدونم رودخانه هست میگه وما من نعيم the best من هذا، وليس all من هذه And من am not the best of all of these people from the men. There is no mercy براي this, no mercy on this, no mercy on this. There is no mercy on this. For what? There is no problem with this. که اونها نگاه به پروردگار این حدیثی که متواطره را این کار بکنن. سبب این بود که اگر بگن ما خدا را میبینیم پس خدا یک جسمی هست که در یک جا منحصر شده مثل ما. یک چیز محصور خدا نباید محصور باشه. خدا باید عدم باشه. پوش باشه. هیچی نباشه. اگر اثبات کردید خدا چیز خدا جسم بست. چون خدا جسمی نیست. چون خدا جسمی نیست نباید دیده بشه. چون خدا جس نیست نه دیده بشه سوال سوالی که مطرح میشه این بحث جسمیت مگر لازمه دیدن جس بودن مگر حقیقت ماهیت یک چیز وجودش به جس برمیگرده مثلا خداوند جبرئیل را می‌فرسته نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم و له 600 جناغ فاللهم ده بره جبى يجمع من نور، جبرئيل بديك ملائكة رأسي نور، نور مخلوق بليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بس جرم، نور جرم، نور حجم، وزن، مادة عش نور إيش تسميه؟ بل قابل رؤية رسول الله و را دید بسید صحابه هم دیدن جبرئیل، وقتی که اومد زانو به زانو به شکل دهی کلمی در اومده بود دیدن ندیدن میگه اصلش خلقتش از نور نبود پس لازمه دیدن و رؤیت جر بودن حج بودن و بودن ماده بودن نیست لازمش این نیست روح انسان روح ما این العبده در قوبه در روح تبعه و البصر بصر میبینه نگاش میکنه قبل بشه روح کسی میبینه شما میخوابید روحتون والله یتوقف الانفس حیلما اتوار توتر غفات بيش میاد روح من بالا میاد باين این کسی میدونه که توتر این روح رفت کسی میتونه ببینه بیش کسی میتونه ببینه ماده از جرمه این مخلوقه این مخلوقه ولی به طور طبیعی ما نمیتونیم ببینیم، به طور طبیعی ما نمیتونیم ببینیم، ولی که ماهیت داره برای خودش اسباب اولا ولله المذلول احلا اسباب اولا خداوند قابل قیاس و مخلوق نیست خداوند وقتی رسولات اصلا میگه اِنَّكُمْ ستران رَبَّكُمْ خدا را میبینیم تشبیه جسم به جث تشبیه رویت به رویت همانطور که شما میبینید خواهید دید تشبيه رؤيت رؤيته شما همون طور که این طور راحت می‌بینید اونجا هم راحت می‌بینید خدا راحت می‌بینید پس و قل يتجلى الله للخلق جحره جحرتان آشکار نه به معناش نه بگید که این رؤیت به معنای عظمت عظمت خدا را فهمید این قرار سترون ربکم يعلم ربکم مجازي خیر مجاز نیست چه صارفی هست کلام بر استو چون خدا جسم نیست نباید یا نزد از قرآن و عرف و حس داریم اون ناس من از چه صعوفم باطله چرا مثال روح زدیم و مثال ملائکه یک چیز قابل رؤیت و ماهیت نداره و تعال الله اما يقولون این هی اجزاه مقال نیستن که خدا ماهیت نداره و کیفیت نداره کیفیتشو ما نمیدونیم ذات خدا رو ما نمیدونیم نه اینکه خداوند ذات نداره یا کیفیت نداره برای ما معلوم نیست علم ما ناقصه خاسره کمل بدر و لا یخفه همانطور که شما برید بیرون ماه چهارده هم را ببینید بدرش از چیش کسی پنها نمیبونه و رب که اوضح و اسباب او و, و پروردگارتون واضح تره قابل قیاس نیست با ماه خداوند ماه مخلوق و خداوند خالقه وليس بمولود وليس بولد وليس له شبه تعال الله المسبح نहम خداون فرع از یک پدری و نهم خداون نهم خداون اصلیه که فرع ازش ما خلقت شدیم سایده شدیم اومده باشیم جزء از خدا نیستیم مفیدی حلول رو می ثبات بکنه قل هو الله احد الله سمد لم یلد بچه داشته خدا ما بچهگان خدا هستیم ولم یولد نه بچه خدا هستیم نه جسی از خدا بعضی این شفه تو زهرشو میاد خب پس شکار بکنیم با فرموده خداغن و نفخت و فیه من روحی از روش خودم درش دمیدم امام ابن عز حنفی در شرح تهابیه میگه که اضافه دونو اضافه است اضافه به خدا و اضافه عین مثلا خداوند در قرآن میگه بیت الله خانه خدا خونه خدا جز خداست خونه خدا جز خداست خیر عینی عالمی خدا گذاشته کلختر کرده این اضافه به نسبت خدا چی اضافه تشریف تشریف مقدس ولله علی الناس علی الناس حج حج رو آنجا گذاشتی این عبادت رو گذاشته حسیث مقدس کرده بخاطر عبادت حج عمره نا الله شطور این قوم سمود خدا فرستات خدا فطور درستوارش مجد تعال الله خدا فطور ندارست پس چرا فطور خدا اضافه اضافه شیه عین مخلوق به خدا اضافه عین مخلوق نه بس بیست اضافه چی مخلوق این اضافه کیه اضافه تشریف یعنی از طرف من بود شرافت داشت مکانه داشت و نفخت فیه من روحی روحی که در ماست جزئی از خداست اگر بگیم مثل منصور حلاص جزئی از خداست یعنی ما خودمون خداییم خداییم وقتی ما خدا هستیم که برای نماز بکنیم برای خودمون نماز بخونیم برای کیوزه میگین ما که جزئی از خدا بخدر همین خلویه ها چی گفتن؟ ما کلا خدا شدیم دیگه روزه و نماز واجب نیست ما برای خودمون روزه رو بگیریم برای خودمون نماز بخونیم کل عبادات ها و تطریف ها را ساقط کردن چرا؟ چون ما از خدا هستیم با این شبه پس ما فرعی و جزئی مولود شده از خدا نیستیم ولی سب مولود خدا مولود مولود نیست از کسی زایده نشده ولی سب والد. پدر که ما ازش جدا شده باشیم نه خود خدا از کسی جدا شده کان الله ولم یکون قبله خدا بوده و قبل از خدا کسی. یعنی هیچ وقت شک نکن که خدا بند خالق تو نیست ام خلقو من غیر شیئن ام هم خالقون آیا میتونی ما اعتقاد داشته باشیم خدایی نبوده یعنی این ناز، این انضباط این دقیق در آفرینش بدون ایجاد کننده باشه خیر ممکن نیست ممکنه یک کلیه بیاد آب و غذا و تصفیه بکنه و دستگاه ها الان ما میگیریم برای دیالیز کردن خون و نمیدونم کار کلیه انجام بده کار فلان انجام بده دستگاه های بزرگ اندازه یک ماشین یک خونه کار یک کلیه نمیدونه انجام بده میتونیم بگیم که این همینطوری به وجود اومده میتونیم بگیم این چشم که تللگیارد مگاپیکسل این موبایل وقتی که می سازن ده مگاپیکسل 20 مگاپیکسل اختخار می این چشم ما مگاپیکسل اصلا قابل شمارش نیست قابل شمارش نیست یعنی دقت بینایی انسان و ذرافتش بکس رو بگیر بلد بزرگش بکن دقتش به دقت آن عدسه هست عددسه چش قابل مقایسه با دسه این موبایلی که اینقدر قیمت براش میذاره این موبایل می غریید سه میلیون و چهار میلیون به خاطر اون دوربینش قابل تییاسی نیست. غیر خدا من این. خداون این چه طور خلق کرده که زیر این چش پلت ها آب روغنی باشه. شما دیدید مثل الان سرد سرما هست تو زاهدان و شمال که دما زیر سفره دیگه آب توی رادیاتور نمیکنن این یا پیش خود که فرما نمیشه. چرا آب آبدیخ را توی آب رادیاتور تو رادیاتور میکنن؟ تا یه نبنده درسته؟ چشم انسان تا افتاد درجه زیر صفر یخ نمیبنده شما پروه خود بشه ما توی سرمایه سرد چشمت یخ نمیبنده که نتیمی بازو بسته کنیم آیا احتمال در این خلق خدا این ذرافت بدون به وجود ای باشه؟ جنیم نطفه که از ما خارج میشه چار, مل... چار ست میلیون اسپر خارج میشه فیضه ها و خصیمون مبین وقتی که خارج میشه دیگه خصومتبار میره یکی از اونها سر وارد خخمت بکنه من اینو میخوام بگم یک ذره که از سر ریستر بودیم از قطره آب ریستر بودیم این قطره آب ما شدیم رفت و رحم با تخمت با اون خواب این آب و خواب با هم مخلوب شد سپس به دی دیواره رحم چسبید هفته اول شد این قطر هفته دوم شد هفته دوم چهارم شد این کاچارده سان بعد از چهار هفته یک ذره سرسوزن ریسر سر بود چه میموری چه حافظه چه برنامه چه فرمولی توی اون ذره بود که هی بزرگ بشه هی بزرگ بشه و بعد چش بیرون بیاد بعد چش بیرون بیاد بعد بعد خل. آیا این نظم بدون آفریننده و به وجود هست والله حاشا و کلام ام خلق من غیرچی؟ میتونید بگید ادعا بکونید خالقی نداری؟ آبه که میشه انسان، آب از میشه اسب، آب گربه میشه گربه، آب اله میشه هیچ وقت آبی و آبی دیگر، هیچ وقت آب به ما اسب میشه اله نمیشه. چرا؟ دقت آفرینش خداوند، نظم آفرینش خداوند. این نظم غیر اون، غیر ممکنه که به وجود آورنده نداشت ام خلق من غیر شی، ام هم الخالقون. یا اینکه خودش خالق احتمال داره خودتون خالق باشید؟ احتمال داره ما پروردگار خودمون باشید؟ نمیتونیم چرا؟ ما اراده نداشتیم مگر شمایی که بچه تو میزازید نه باید اراده به که بزادید؟ چطور اراده کردید خودتون تاخی؟ پس احتمال نداره خالقی نباشه احتمال نداره خودمونم خالق باشید پس خالق کیه؟ اللهم متعال سبیش اسم ربک الاعلا. سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده اون عظیم اون بزرگ اون بولن مرتبه و ولا مرتبه اون ما ماهاس بدون شک ولیست بمولود ولیست بوالد کسی نیست که این خدای عظیم رو آفریده باشه و یقینا قبول داریم بدون شک حتی خدا رو این خدای مرونه ولی یقینا قطعاً اون پروردگاری که محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساد و این کلامش را ما میخونیم قرآنش ام خلق من غیر شيء ام هم الخالقون و قل هو الله و احد را یقینا قبول داریم بدون شک پروردگار من هست مالک من هست خالق من هست مدبر من هست محی و ممیت من هست رزاق من هست مدبر من هست حمید من هست رعوف من هست حلیم من هست جبار متکبر قحار این قبول داریم برای خداوند مون و ليسه به مولود له شبه تعال الله المسبح هیچ خداوند هیچ شباهت و مخلوقات نداره فلا تبغیبو لله الامثال مثال برای خدا نزنید چطور خدا دیده میشه روز قیامت مثال نزن میبینیم چطور خداوند صحبت کرده مثال نذا نگو من صحبت کردم را از غیر از انسان ندیدم ما صحبت میکنیم مورچه صحبت میکنیم و قالت نملی شنیدی آیا شنیدیم باید دانشش میکنیم خیر کی شنیدین یا خدا نق میکنه سلیمان علیه السلام چه قدرتشو داشت ما قدرتشو نداریم که بفهمیم درک بکنیم چطور درباره خدا خطابات بکنیم و بیام تا این بکنیم برای خدا که نه صحبت نداره خداوند هیچ بخشبهی نداره من نمیتونیم تشبیل بکنیم بخاطر همین امام مالک رحمه الله وقتی که اومد اون شخص درباره چطور فاین آمدن خدا و بلارسلش مستوی بودنش بر عرض سؤال برسی چی گفت؟ گفت الاستضاع و معلوم والکیف و مجهور والایمان بهی واجب و و عنه ایمان بهش واجبه کلام خداست استضاع معلوم معناش سوند خدا کلام خدا هم معلومه ما که خدا رو می‌بینیم هم معلومه معناش برای ما قاصره ولی کیفیتش ما نمی‌دونیم کیفیتش برای ما مجهول علم ما ناقصه قاسره خدا را ندیدیم نه خدا را دیدیم نه مثل خدا که باش قیاس می‌کنیم نمی‌تونیم بر خود قیاس بگیریم نمی‌گیم نمی‌تونیم بر جن نبرم نمی‌گیم قابل قیاس خدا بر مخلوقاتش هست لیست ک مثلی شی فرآت دریب این مساله محسوس خود رو برای خدا نزنید از این شخص میرید من نمیتونم درد بکنم خدا بالا رفته مگر با قیاس به مخلوقات یعنی چی میخواست قیاس بگیری پله از خدا رفت بالا یا فرماس کرده مثل پرنده میتونید خیلی هیچ محسوس برای خدا بنده مزن و قد ینتر الجحمی هادا و عندنا بمستاق ما قلنا حدیث مصرحه فرد یک شخص یک جهمی تابع جهل نصفان جهل نصفان شاگرد جهل ندرهم این دو نفری که در ابتدای قرن دوم بودند جلو گفته میشه جهل ندرهم سرش زده میشه خالد تاثیری سرش میبوره و قصش ضعیفه که میگه یا ایها الناس ضحوا و ضحایا تکانی مضحیم بجعد الذهب تقبل الله ضحاياكم روزعيد بوده سرش رو میوره ایما مردم خدا اسما قبول بکره از منم قبول بکره ولی خب تلاش ضعیفه ولی خب کسانی هستند که که امام احمد بن حنبل و امام دارمی دو تا کتاب نوشتن در رد بر اسمه بر همین شخص جهم الصفار الرد علی الجهمیه تالیف امام دارمی دارن از محدثین اهل حدیث و به ذلک دان الاثی و دارمی و احمد بن حنبل نوشتن نه که فکر میکنید اینا فقط تالیف کردن کسانی دیگرم با اسناد بهمون ازشون نشده مثل وزاعی و مالک و غیرت ائمه سلام در رد برکی جامیه و اخوان جامنه سفان و قد ينكرر هذا وعندنا بمصداق بمستاق ما قلنا حديث و بر اساس مستاقه این حرف من قدره خايندي حديث سريحي دريم قدم بمستاق قلنا حديث المصرح رواه جرير جرير بن عبد الله البجيري جرير صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه جرير عن مقال محمد السخني وسده صلى الله عليه محمد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل مثلما قد قال ذاك تنجح فستين قرار بجنين قوله قرار بده حرف سخن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحروه راه رسول الله صلى الله عليه وسلم باش و این حدیثی که با این اسناد از این صحابی جلیل و از نه از این بلکه از ده تن صحابی دیگر هم روایت شده در بحث اثبات رؤیت برای خداوند که حدیثش متواتره یکی از اونها که در صحیحین از حدیث جرید از رسول الله صلی الله علیه و حدیثه حدیث انکم سترونا ربکم بغن جهمی بگو من تسلیم بحی خدا هستم و این نعمت را خدا برای من گذاشته و پروردگاری یک تایان را خواهم دید فقل مثل ما قد قال داد اون چیزی که رسول الله صلی علیه وسلم گفته و صحابه دین خودشون گذاشتن و ره به راه رسول الله بودن و دین ما بعد اون از تابعین و تابع تابعین بوده پس تو هم جزء انها باش كخدا عزيز راضي باشه والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم تا انك خدا عزيز راضي باشه ره را انها باش راه را ونجاح در قیربی از راه این نیچان و این بزرگان و این متقیان از واخر دعوان الحمد لله رب العالمين صل الله على محمد و محمد